بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد بر آن شدیم که در زمینه مصطلح الحديث کتابی رو توضیح دهیم که مناسب باشد و بهترین متنی که در نظر رسید منظومه البیقونیه و توجه به که سی و خردی به شعر هست، معمولا طلابی که علاقه به علوم دینی دارن، این متون رو حفظ میکنن. گفتیم یک مختصر مختصر توضیحی دهیم تا به معنا و مفهوم آشنا باشد و در سایه آشنایی حفظ کند، نف بیشتر خواهد شد. قبل از اینکه از بیت اول کتاب شروع کنم بهتر هست یه سری تعاریفی رو از این علم ارایه هم چون نهآورده است در شعر در نظم تعریف مصطلح الحدیث علمی هست دارای قوانینی که به وسیله همون قوانین احوال حالات سند و متن شناخته می شوند از زاویه صحیح بودن و حسن بودن و ضعیف بودن یا عالی و نازل بودن سند یا مرفوع و مقطوب بودن یا کفیت تحمل حدیث و ادای آن به دیگران صفات راویانی که این حدیث رو روایت کنند. پس علمی است که احوال سند و متن به وسیله آن قوانینش شناخته می شند. موضوعش مسلما راوی و مروی هستند اون چیزی که روایت شده از زاویه قب... مرد مورد قبول بودن یا مردود بودن فایدهش بسیار هست شناخت اون چیزهایی که مورد قبول هستند و اون چیزهایی که مردود هستند این سمرج هست خب بر کسی که علم حدیث میخونه فرض عین هست که این اصطلاحات رو اصطلاحات حدیثی یا مصطلح حدیث رو بیاموزد و در مجموع فرض کفایه هست اما بر شخصی که میخواد علم حدیث بیاموزد و علم حدیث رو تدریس کند و گفتیم میگویند بنیانگذار و گذار این علم یعنی مصطلح الحدیث قاضی ابو محمد رام هرموزی بود است متوفای هزارو هشتاد هجری قمری پس متنی که با هم خواهیم خواند و نظم هست علم مصطلح الحدیث هست که علم درایت حدیث هم گفته می با بسم الله شروع می کند بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رو به زبان شعر نه است میگویند اولاد ترخ است و در ترکیب بسم الله بگوییم که بسمی جار و مجرور هست عاملش محذوف هست بصریون چنین مقدر کردند. بسم الله الرحمن الرحیمی تألیفی یعنی عامل ما کلمه تعلیفی است که اسم هست, هست و کوفیون گفتهاند بسم الله الرحمن الرحیم و اللف تعلیف میکن به نام دل آخر در این رابطه که چرا کار با بسم الله شروع شود آادیسی هم وجود دارد که در صحت و و آنها محدثین سخن ها ولی اینکه با بسم الله شروع شود همه متفقند که با بسم الله شروع شود در بیت اول نازم رحمه الله یعنی عمر ابن محمد ابن فتوح دمشقی شافعی چنین شروع میکند ابدا بالحمد مصلیا علی محمد خیر نبی ارسلا او فعل مزاره هست فائلش انا زمیر مستطر هست وجوبی شروع میکنم چیرو منظومه امره بالحمد بحمد الله متعال بحمد و سپاس الله متعال مسلین مسلین الله زیر حال هست حال انا هست یک در ابد و مستطر هست یعنی شروع میکنم این منظومه را با حمد الله متعال در حالی که درود سلام میفرستم بر سیدمان محمد خیری نبی ارسلا بهترین پیامبری که فرستاده شده است ارسلا فعل ماضی مجهول هست هویی که به محمد برمیگردد نائب فائلش هست. این علیفی که در ارسلا آخرش اومده، علیف اطلاق هست. پس عبد او بالحمدی، علی محمد خیر نبی ارسلا. این شد از معنای بیت اول. اولین کاری کرده است به اقتداء از کتاب الله متعال که با حمد شروع می شود، و انسان جز حامدین باشد با حمد شروع کرده است گرچه خود بسم الله الرحمن الرحیم حمدی هست ولی عرفا و اصطلاحا دیگه حمد حساب نمیشود و ذی من اقسام الحدیث عده و کل واحد اتا و حده ذی اسم اشاره هست تنبیه روش نیومده است برای مفرد مونس هست میگه این چیزی که در ذهن من هست هستو در این کتاب معانیشو خواهم گفت یا این منظومهای که اونو میآورم از اقسام مختلف حدیث تعدادی رو آورده است یعنی تعدادی از انواع علوم حدیث رو آورده است که تقریبا سی و نوع رو از اصطلاحات حدیثی رو شرح داده است، آورده است. و ذی، ذی مبتدا هست. این واو رو میتونیم واو عطف حساب کنیم و میتونیم واو استعنافیه حساب کنیم. میگه این یعنی این اشاره دارد به همین قصیدهی به همین منظومهی که نوشته است. من اقسام الحدیث اده دارای انواع متعدد علوم حدیث هست اده خبر ذی هست و ذی اده ولی بدلیل وقف و سکون زمه خبر مقدر هست و كل واحد اتا وحده کل باز مبتدا هست هر یکی از اونها عطا اومده است در این و وحده این حده مفعول معهو است. اگر ما اینو عطف به فائلی که در عطا هست میدادیم میشد و کل واحد عطا وحده ولی از اون جایی که خیلی ضعیف هست این چیز که ما بیاییم اسم بر ضمیر مستتر عطف کنیم این در زبان عرب خیلی ضعیفه لذا حد را مفعول معهو هست هر یکی از اونها اومده است همراه با حده حد حد اصطلاحی است در منطق اومده است حد یعنی تعریفی که جامع و معنی باشد تعریفی که جامع و مانع باشد بهش میگن حد میگه هر یکی از اونها با تعریفش تعریف جامعه و مانش اومده است بله انواع مختلفی رو اینجا میاره و ردیف میکنه اولها صحیح اولین اونهایی که ما آوردیم در منظومه صحیح باشد. یعنی اولین اصطلاحی که توضیحش داره لفظ صحیح است اصطلاح حدیث صحیح است كحديث صحيح بيتي حديثي كفت ميشي اولو هالصحيحو يعني اولو مبتداء ها مضافن إليه ثم اولو مبتداء هست ومضافي ها مضافن إليه هست الصحيحو خبرش هست اولو هالصحيحو معنى الرواد الشنين هست آنها ون إن آنواه مختلف صحيح ميباشد وهو ما اسناده ولم يشذ أو يعل صحيح قدومي اسناده اونیکه سندش، اسنادش متصل باشه و لم یشذ شاذ نباشه او یعل الی هم نداشته باشه پس اینها که در بیت سومش آورد اول دو این دو بیت چون موقوف المعانی هستند با هم دیگه مرتبطن به تو کامل میکنیم و بعدش توضیح خواهیم داد. اسنادوت فاعل اتصال هست و هو متصل اسنادوهو اتصال فاعل مازی است. اولی به خاطر وقت فتحش مقدر است. یرویهو یرویه عادلون ضابطون ان روایت روايتكن آن را عادلی که ذابت باشه حالا چه در درون حفظش درون حفظ حدیث چه در سینهش چه در نوشتارش متقن باشه روایت کنه اون عادلی که ذابت باشه در حفظش حالا چه نوشتاری چه در سینهش ان مثلی و اون عادل ذابت حدیثو از مانند خودش عادل ذابتی روایت کرده باشد معتمدون فی ذبته و نقله این صفت دومه عدلون است یارویی هی عدلون عدلون فایل یاروییی هست ذابتون صفت عدلون هست اند مثل معتمدون باز هم صفت دومه عدلون هست یعنی عدل ذابت معتمد فی ذبته و نقله در نقلش باش. در ذبتو نقلش باشه حالا اینجا اولین نوع از حدیث در از اصطلاحات حدیثی رو توضیح داد. حدیث صحیح گفته بود حدیث صحیح اونی هست که سندش از اول تا آخر وصل باشه راویش عادل باشه و ضابط باشه حالا چه اونو در نوشتار و چه در سینهش ضابط باشه و شرط بعدی این بود که راوی راویا همه این شرطو داشته باشن یعنی همشون عادل و ضابط باشن بدون شاز و بدون علت قاده، شاز نباشه علت قادهه نباشه اینی که سندش از اول تا آخر متصل باشه واضح هست اینی که راوی هم عادل باشه تقریبا معنیش واضح هست، فسق نداشته باشه عادل تعریفش در شریعت واضح هست و اون چیزی رو که روایت میکنه ضابت باشه محکم باشه در حفظش هر وقت که دلش بخواد اونو روایت بکنه بتونه اونو حاضر کنه و روایتش کنه و شاز نباشه و علت قادهه نداشته باشه پس عادل باشه یعنی مسلمان مکلفی که سالم از فسق و گناه باشه ضبط و باشه البته ما خیلی مختصر مختصر توضیح میدیم اون چیزی رو که میشنوه از حدیث اونو ثبت بکنه و به اتقانش هم ثبت بکنه به گونه ای که این توانو داشته باشه که هر وقت دلش بخواد اونو روایت بکنه اگر در سینه ثبتش کرده و اگر در نوشتار ثبتش کرده که باید به شکل صحیحی ثبتش کرده باشه و منظور از این که شاز نباشه یعنی راوی سقه با راوی سقه از خودش مخالفت نکنه اگر حدیثش مخالف با حدیث راوی سقه از خودش بود اون موقع میگیم این شاز هست علت قادعه هم که خودش بر بردونو هست ظاهر باشد مانند فسق راوی و سوء حفظش و پنهان باشد من اینکه حدیث موصولی رو مرسل کند و علتهایی که خیلی ریز هستند عیوب حدیثی که خیلی ریز هستند و افراد حازق و ماهر اونها رو کشف میکنند. پس در دو, بیت دو بیتی که خوندیم حدیث صحیح رو تعریف کرد دوباره میخونیم و روان معنی کنیم اوله صحیح و هم متصل اسناد و لم یشذ او یعال اولی نوع صحیح است و اونی هست که سندش متصل است شاز نیست علت ندارد یا روی عدل و ضابطه ان مثله روایت است، اونو عادلی که ضابط است از مانند خودش یعنی راوی که هم این راوی از اون روایت کرده تمام این راویان دارد معتمدن في ذبته ونقله. نقله این بود از شرائط حديث سهی اما بيت پنجم رسم والحسن المعروف ترقى در بیت پنجم میفرماید اصطلاح بعدی رو که همون حدیث حسن هست حسن والحسن مبتدا ست المعروف من الإفلام. الافلام من موصوله هست اسمه مفؤول هست خبار هست ترقاء تمييز هست والحسن المعروف ترقاء وغدت رجاله لا كالصحيه اشتهرت ميجي حسن ترقش معروف حسن وغدت رجاله این غدت از اخوات ساره هست، افعال ناقصه به منیگ گردیدند، و غدت رجاله و رجالش مشهور هستند، و غدت رجاله لکه صحیحش تهرد. این غدت رو ترکیب کنین تا معنای بهتر واضح شود، غدت از اخوات ساره هست، رجالو اسم غدت هست، این هو هم مضافن علیه هست، اشتهرتی که در آخر مصرهء دوم وده است خبر غدت هست در اصر این است غدت رجالهو اشتهرت لا صحیحه. این اگر روانش کنیم پس میگه حسن اونی هست که طرقش معروف هستند و راویهاش اما اون شهرت حدیث صحیح رو نداره. این تعریفی که بقونی اینجا برای حدیث حسن آورده چون حدیث حسن رو در کتب مختلف تعریف دیگهی براش آوردن. مثلا در نخبه آورده است که تمام اون شرایط حدیث صحیح رو داشته باشد با این فرق که در ضبط خفیف و زبترند از اون حدیث صحیح. این اون پنج چیزی که گفتیم متصل باشد، عادل باشد، تام باشد، علت شاز نباشد و علت نداشته باشد، این تعریف حدیث صحیح بود. در تعریف حدیث حسن میآورند که ضبطش از رجال حدیث صحیح خفیفتر باشد، کمتر باشد. ولی این تعریف که اینجا بقونی آورده است تعریفی است که از خطابی آورده است در رابطه با تعریف حدیث حسن تعریف مختلفی آوردن والحسن المعروف ترکن پس حدیث سح... حسن اونی است که طرقش و راویاش معروف باشند ولی اون شهرت معروفی رجال صحیح و نداشته باشند لاک صحیحش دهارد اون شهرت احادیث صحیح رو نداشته باشند میگویند که اون تعریفی که در نخبه ابن حجر آورده است رحمه الله تعریفی است دقیقتر یعنی جامع و مانع هست در این تعریف میشه مخصوصا که این قاعده ها رو کامل نآورده است ابهایی آورد چون ابن حجر ابن حجر در نوحه و حتی در خود نخبهش میاره حدیث حسن حدیثی است که سندش متصل باشه عادلی که ضبطش خفیف باشه از مثل خودش اونو نقل کرده باشه شاز نباشه علت قاده هم نداشته باشه اونو میگن علت نداشته باشه اونو میگن حدیث حسن ولی تعریفی که خودمون خوندیم به حقی آورده بود از خطابی بریم نوع بعدی وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقصام كسر حسن التعريف تعريف صحيح الخنديم تعريف حسن الخنديم وسيديم بتعريفه ضعيف وكل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقساما کسر یا کثر و هو کثر هر چه که از رتبه حسن پایین تر باشه کل ما عن رتبه حس قصر هران هر چه که از رتبه حسن پایین تر باشه خب دیگه موقعی که حسنو گفت خود به خود دیگه صحیح وارد میشه حسن از صحیح پایین تره هر که از رتبه حسن قاصرتر باشه فهو الضعیفو پس اون ضعیف است کلو اول مبتدا هست ما و کل ما مين ما مضاف الیه است ان رتبه الحسن قصر فهو ضمیر این ففای رابطه هست هو هم زمیر فصل هست ضعیف، فهو ضعیف، ضعیف خبره مبتدا هست که کلو باشد خواندیم. و هو این هو دواره مبتدا هست اقساما کثر، اقسام زیادی دارد یعنی ضعیف، اقسام زیادی دارد پس هر هدیسی که صحیح و حسن نباشد صفت صحیحیت و حسن بودن رو نداشته باشد، اون موقع حدیث ضعیفی هست. این بود از حدیث ضعیف. زوف حدیث میتونه خاطر سقت در اسناد باشه، یعنی راوی افتاده باشه و میتون اصلا تعنه در راوی باشه راوی نه افتاده باشه ولی تعنه در راوی باشه اونی که مرتبط به افتادن راوی هست خودش انواعی دارد مثل معلق و مرسل و منقطی و معزل و مدلس مرسل و اونی که تعنه در راوی باشه باز هم ده تا حافظ ابن حجر در نخبه آورده است که عیوب هستند که مرتبط به راوی هستند، سه ادالتش دروغگوی و فلان و فلان و بعضی ها هم که مرتبط به ثابت بودن راویان مانند مقلوب و مسترب و مدرج و شاس و الی آخر. پس در این بیت ششم کتاب نظم بغونی می‌فرماید هر آنچه که از رتبه حسن پایین تر باشه فهو الضعیف و اون ضعیفه و هو اقسام کثور اقسام مختلفی دارد اینجا اقسام چرا؟ منصوب هست این اقسام اینجا تمیز هست محول عن الفائل هست در واقع چنین هست و هو کثور اقسامه ولی تغییرش دادند آورده شده تمیز وهو أقساماً كثور. إن معنى إن بشكل روانش بود. بس أقساماً إنجا تميز حسن. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتاب إن هو المقتوع. بيت حفتم دو, دو استلاه ديگر و توزيح مداد. بحث هایی که متعلق به متن هستند اگر هم به سند هم بگوونه ای مرتبطن اما مرتبط به مت هستند و ما عضی فل المرفوع ما مبتدا هست عضی للنبی نبی عضیفه فعل مجهول هست وااف معلومش هست ماضی مبنی ماضی مجهول هست ترکیبش دیگه ساده هست ما مبتدا هست المرفوع خبرش هست. و ما لتابعين هو المقتوع یعنی yani و ما اضيف لتابي لتابعين مثل داعین هست که تابعیون بوده با همون قواعد حسب شده در صرف بحثش میاد و ما لتابعين هو المقتوع یعنی yani و انچه که نسبت داده شود به تابعی بیش میگن مقطوع پس مرفوع و مقتور رو اینجا آورده است در این بیت هر آنچه که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم نسبت داده شود بهش معروف میگن حالا چه سند متصل باشه چه متصل نباشه پس معرفو موقعی که میگیم یعنی آنچه که به پیغمبر نسبت داده شده باشد حالا چی اون سندش متصل باشه متصل نباشه مرسل باشه نباشه بهش میگن مرفوع به خاطر که به پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شد و هر آن که سخنی قولی چیزی به تابعی نسبت داده شود بهش مقتوم میگن اینجا بحث موقوف رو ناورد چون موقوف آن هست که به صحابه نسبت داده شود قول یا فعل یا تقریری که به صحابه نسبت داده شود بهش میگن موقوف پس این از زاویه متن هست متنی که نسبت داده شود به رسول الله صلی الله علیه وسلم بشت میگن مرفوع به صحابه موقوف و به طابعی مقتو. البته اگر به طابعی نسبت بدن بعدش میگن موقوف و طابعی با قیدش بیارند در کل اون موقع به مقتوع موقوف هم میگن ولی اگر با قید باشد قید بکنند که این موقوف از تابعی هست خلاصه مرفوع رو خوندیم مقتوع رو خوندیم مصر دوم هم ترکیبش مثل اولی هست ما مبتدا هست المقتوع هم خبرش از هو هم زمیر فصل هست در بیت هشتم مسند رو میاره ببینید بعضی از طلاب ابتدایی قاتی میکنن مسند رو با مرفو. مرفو سخن کردار یا تقریری هست که به پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم نسبت داده میشود شود ولو اینکه حتی اگر سند متصلی نداشته باشد. ولی مصند اونه که سندش متصل باشه پس رابطه بین مسند و مرفوع این هست که هر مسندی مرفوع هست ولی هر مرفوعی میتونه مسند نباشه میتونه وصل سندش وصل نباشه ازا بعد از مرفوع و عاب divided هست مسندرو والمسندو المتصلو الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن والمسندو مبتدا هست ال والمسندو المتصلو مجي مسندو نياست ممتصل هست المتصل خبر من مسند هست ومظاف هست والمسندو المتصلو الإسنادي اینجا المتصل مضاف هست شاید در ذهنی پیش بیاد که چرا پس الفلام و لام دارد مضاف نوع هست مضاف معنوی و لفظی لفظی میتونه علف و لام بگیره اسنادی پس و المتصل الاسنادی المسند میشه مبتدا المتصل میشه خبر و مضاف الاسنادي مضاف الي تعریفش میگه میگه مسندونی هست که سندش متصل هست من راوی از راویش حتی المصطفى تا محمد مصطفى صلی الله علیه و سلام ولم يبين بانه يبينو بانه يبينو به جدا بودن طلاق باین ها این لفظ دیگه بیاد در ذهنمون ولم يبين تأکید همون تعریف اولی هست و المسند و المتصل و الاسناد سندش متصل باشه اینجا داره تأکید میکنه ولم یبن و منقطع نباشه جدا نباشه انقطاعی در سند نباشه پس مسند اونی هست که سندش متصل هست و مرفوع به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هست و این تعریفی هست که از حاکم مشفور هست افراد دیگه تعریف های دیگه ای رو برای مصند آوردن بعضی مثلا مترادف با مرفوعش دانستند. اتصال بودن رو شرط ندانستند. و بعضی گفتن متصل باشد اگر که هم خدا صلی اللہ نسبت داده نشاد بیت نهوم و ما بسم کل کلی راوین یتصل اسنادوهو فالمتصل وما وانشك به كل راوي يتصل باشينيدن هر راوي واسل باش يعني این راوی از اون و اون از اون تا آخر از همدیگه شنیده باشد وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى اتصل فینه مضارع است اسناده هم فاعلش است هران چه متصل باشه شنیدن راوی ها متصل باشه اسناده او به سندش اسنادش بر مصطفی صلی الله علیه وسلم فالمتصل پس اون چی متصل است این ف رابطه است المتصل خبر هست همون خبر مایی که در ابتدای بیت اومده بود و ما به سمی کل راوی متصل که ما مبتدا بود پس حدیث متصل حدیثی است که هر راوی حدیث رو از شیخش شنیده باشد. و با الفاظی مثل سمیتو یا حدثنی او روایت کرده باشد. ده دهمین بیت تصمیم می که ما داشتیم گفتیم سی و خوردی بیتن ده بیت ده بیت, بیت بریم بالا ولی بیت دهم ده و یا از و, و در یک اصطلاح رو توضیح میدن دیگه هر دو رو میخونیم مسلسلن قال ما علا وصفا عطا مثل اما والله انبان الفتا انبال الفتا مصطلح دهومی که مصطلح بعدی که توضیح میداد یا اصطلاح اصطلاح بعدی که توضیحش میدهد اصطلاح مسلسل هست خودش میگه قول ما علی وصفن اتا. اونی هست که بر یک وصفی بیاید. مثل مثال میزنیم آنچه. سه مثال میگردم. اما والله ان بقی الفت ان الفتا. ما اما که همون حرف استفتاح هست. والله قسم هست. ان بانی الف ان بانی الفتا مسلسل قل ما علی وصف آتا مثل اما والله ان بانی الفتا این با همزه خونده نمیشه در از چونین هست ان بانی ان ولی چون وزن شعر به هم میخوره لذا انبأ نل فتا انبأ نل فتا اگر بگیم انبعنی وزن شعر به هم میخوره انبال الفتا خب مسلسل قل ما علا وصفن اتا این خبر مقدم هست ما ای که بعدش اومده است مبتدا موخر هست یا میتونیم اون مسلسلون رو مبتدا حساب کنیم گرچه نکره است چون مصویقی که اجازه بده که این مبتدا واقع بشه هست دیگه نکره محض نیست مسلسلن پس خبر مقدم هست قل ما علی وصف اتا اون یک بر یک وصف بیاد مثلو مانند اما والله انبان الفتا مانند اینکه که راوی بگه انبان الفتا یعنی موقعی که یه سندی مثلا پنج تا راوی داشته باشد و تمام راویان در یک صفتی مشترک باشند بهش به اون حدیث میگن مسلسل این راوی بگه والله انبان الفتا والله لفظی رو تمام راوی های حدیث ذکر کنند با هم مشترک باشند بهش میگن مسلسل کذاک جار مجرور خبر مقدم قد حدثنیه قائما او کذاک قد حدثنیه قائما کذاک جار مجرور خبر مقدمه قد حدثنیه قائما که محکی هست مبتدای مؤخر هست کذاکه قد حدثانیه قائمه همچنین مثال دیگه میاد من این که ایک راوی بگه اون راوی در حال که ایساد بود حدیثو برام روایت کرد او بعد از حدثانی تبسمه یعنی که بعد از اینکه حدیثو برای من گفت لبخند زد تبسما این تبسما هست الف الف اطلاق هست تبسما فعل ماضی هست پس مسلسل یا در وصف راوی ها یا مسلسل در صفت تحمل و ادا چطوری از استادونو گرفته و چطوری به شاگردانش داده تحمل و ادا زمانی که راوی ها در وصفی از اوصاف با هم دیگه مشترک باشند این میشه مسلسل در وصف روات رو و حدیثی که راویهاش در وصف ادا کیفیت ادا و در لفظ ادا با هم مشترک باشند، اش میگن مسلسل در صفت تحمل و ادا همین جای کار اکتفاق میکنیم انشاءالله ده تا ده تا تا سه جلسه این کتاب رو همچنان که گفتیم شرحی نیست این که ما میدهیم فقط توضیحی است برای طلبه هایی که با نفعی بیشتر بتوانند این منظومه پرمنفعت رو حفظ کنند